اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها به نام خداوند بخشنده بخشاکشگر هنگامی که زمین شدیدن به لغز در و اخرجت الارض اثقالها و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد و قال الانسان ما لها و انسان میگوید زمین را چه می شود يومئذ تحدث اخبارها در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو میکند چرا که پروردگارت به او وحی کرده است. يومئذ در آن روز مردم به صورت گروه‌های پراکنده از قبرها ها خارج می‌شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. فمعی عمل میثقالد رودینخواایی یا راه پس هرکس هم وزن ذر ای کار خیر انجام دهد آن را میبیند. و می عمل میث قالد رودین شایی یا راه و هرکس هم وزن ذر ای کار بد کرده آن را میبیند.